خب، امروز قراره که من یه ذره ممکنه راه برم چون شماهایی که نمی‌بینم، لازمه یه ذره این موارد کنیم یه ذره جزئیاتdatasource داره بالاتر. امروز قراره که در مورد این موضوع با هم صحبت کنیم که اگر هر کدوم از ما یه سری ایده های رو داشته باشیم، چه فرایندی رو باید ببرییم جلو که بتونیم اونها رو تبدیل به ثروت بکنیم، تبدیل به پول بکنیم و شرکته بزرگی از دل اسلاید بعدی رو میاری من علی امیدی در واقع فعال توزی شتاب دهنده ها حالا شتاب ها رو نمیدونم چند تاتون میدونید اصلا چی کار میکنن ولی بهش میرسین رو میدم فوق تحصیل دانشگاه تهرانم و مدیر استارتاپ کمپ شتاب دهنده دیمون این که کم کمپ چیه این که دیمون چیه این که شتاب دهنده چیه شاید خیلیاتون ندونید در نتیجه مجبورم یه داستانی برای شما بید. چندین سال پیش مدیر و مؤسس شتابهنده دیمون که یه آقایی به نام رحیم عمیدی توی فرش فروشیش توی سیلیکون ولی داشته کارفادش رو میکرده توی بیزنس فرش بوده که یه سری دانشوها که هر روز میرفتن دانشگاه استانفورد برمیگشتن میاد و میبینن که توی گاراژ فرش پروشی ایشون یه سری میز بیکار افتاده که اون در کسی ازش استفاده نمیکنه یه محیطی هم هست که میتونن ازش استفاده کنه تو این فرایند اومدن دیدن که خب چن خود میشه که ما بتونیم از اینه استفاده کنیم اومدن به این آوارایین گفتن که آه اجازه هستش که ما بیایم کار خاصی هم نمی‌کنیم ما توی گاراژ شما میایم یه سری کار کامپیوتری داریم میخوایم انجام بدیم حالا توی دانشکانون به دلایلی نمیشه چوریو ندادیم میخواین ببینیم اینجا میتونه این انجام بده. راهنما از اونجوری میگه که کار عجین غریبی نیست دیگه اونم بیکار افتاده میگه باشه خوب بیاید بشینید و پارکنا انجام بدی. امید این که حالا یه کمکی کرده باشه یه کار خیری کرده باشه. اینا هم نمی میگن که اینا اول مثلا اگه دو نفر بودن بعدا شدن سه نفر، چهار نفر، پنج نفر بعدا مشتری داشتن بعدن میگفتن که اگه حالا قهوه داری میتونی میگه چای قرد. مثلا یه دیمون قهوه به ما بدی. این فرایند رفت جلو و این شرکت امروز همه ما به اسم گولیه میشناسه هر شرکتی برای اینکه بخواد این فرایند رفت ببره جلو نیاز به یه سری کارها داره که این کارها الزامی نیستش که ما بخوایم بریم وارد یه سری از این اکسلیریتور یا جایی دیگه بشیم ولی موقع اون اینکه به شما کمک کنه اصلاحی بعد از اینکه این اتفاق افتاد اون آقای رحیم پیش خودش باید فکر کرد گفتش که خب پس دانشجوها و کارفرین این یه چین کانسفه میخوان برای اینکه بتونن کارشون رو بهتر کنن برای اینکه بتونن کارشون رو ببرن جلو پس بیاین ما یه سری جه درست کنیم با همین فمصفه که به آدما جا بده حالا تونست پول بده مشاوره بده و و و. و, و. توی این ف شتابنده پلاگ ام پلی رو تحسیز کرد که الان شعبه هایی که توی احسان دنیا داره رو شما دارید میبینید و توی ایران تحت عنوان دیموند که این در واقع شروعش از همون داستانی بودش که به شما گفتم. اسلاید بعدی رو موزنید علاقه بر گوگل از در واقع این شرکت پلاگ یا اکسلیرکتر پلاگ ام پلی خیلی تورکولیای بزرگتری هم در اومد سانهاود و سایر که در واقع های گونده که شاید الان شما همه اسم اینها رو بشناسید و بدونید چه بیزنسایی خودی ولی اینا همشون از این فرآینده رفتن چه اسلاید بعدی رو خب حالا مستقل از این داستان همه ما ممکنه یه سری ایده داشته باشیم و به ببینیم فکر کنیم که چه جوری این ایده در رو تبدیل به سر وقت کنیم تبدیل به طول بکنه و چه پارهایی وجود داره و چی کار می‌تونیم انجام بدیم از بچگی ممکنه هزاران ایده توی ذهن ما بوده باشه نمیدونیم کدوم بهتره، کدوم اولویت داره، کدوم ممکنه برای ما خیر جا باشه، کدوم برای بازار ممکنه جا نگیستر باشه و کدومش رو بخوای انتخاب بکنیم. این نکته‌ای که باید اصلاحی بعدی میریم باید این نکته توجه کنی که هر کدوم از این ایده های ما داره یک پرابلمی رو حل میکنه و ما باید اولین کاری که برای در کردن دادن بیزنسمون حواسمون بهش باشه یعنی که واقعا چقدر اون پرابلم پرابلم عموم جامعه هست نمیگم اونم جامعه حداقل اون مارکتی که شما دارید واردش میشید چقدر در واقع آدم ها این مشکل رو مشکل حس کردن چقدر این خدمت رو نیاز دارن و نکته دوم چقدر حالاً برای این داستان پول بدن چون شما وقتی کس با کنید که کسب و کاری اومد دارید راه میکنید اونبال این که یه کار خیلی انجام بدید برای عموم جامعه چرا آدم در یکی جایگاه ها ممکن رو انجام بده که به عنوان خیلیه ولی شما وقتی که دارید تو مکانیس کنید می‌کنید برای اینکه بتونید کارتون رو واقعا به پول برس بیارید باید به این دقت کنید که اون پرابلم چقدر پرابلم و مردم چقدر حاضرن برای اون سولیوشنی که شما در نظر گرفتید پول به شما بدن اسلاید بعدی ما به این داستان میگیم آیدیا والیدیشن اولین استپی که بعدتر جلوتر به شما میگم توی یه سری بیزنس پلانی که حالا بهتون میگم کانسپت فکریش چی جوری باید باشه توی اونجاها اولین تایتلی که باید همه رایت کن. الان میخوایم به یه تعریف واحد برسیم این داستانی که ما داریم میگیم این سازمانی که میخواد به وجود بیاد یه سری آدم توش قرار کار کنن برای یه ایدهی که میخواد منجر به تولید سعوت بشه و میخواد به خیلی از آدم ها خدمت شده ساخت. و از الان به بعد حواس هممون باشه که اگر گفتیم استارتاپ منظورمون همین شرکت نوپا کوچولو است که قراره رشد کنه. اسلاید بعدی رو می‌ذارم. اولین کاری که هممون باید انجام بدیم که اگر انجام ندیم شکست می‌خوریم اینه که باید تیم سازی انجام بدیم. تیم سازی یکی از مهمترین قسمت‌هایی که باید در واقع اون رو بهش دقت کنیم و یکی از مهمترین چیزاست. این و سراغ رو شما سر و تو دنیا باعث شد که میگن در واقع ایده ای، ارزشش یک دلاره. چیزی که اون یک دلار رو تبدیل میکنم به میلیون ها دلار، میلیاردها دلار شویم، اینکه یعنی اجاره خوده. اجاره خوبم. میگم یعنی اون کاری که در واقع یه دونه تیم انجام میده. اگه این وسوسه شما بافتن سرمایه گذاری بکنه، در واقع دنباله تیم شما سرمایه گذاری کنه. پس این یکی از مهمترین کارها و یکی از سختترین کارهاست. استاد واجد میزنم. حال توی فراینده من که تیم بسازیم،, اولیه بسازیم و و و. و. نمیدونیم چی کار باید بکنیم یه سی چیزا تو دنیا به وجود اومده به نام کوورکینگ اسپیس ها کوورکینگ اسپیس ها جوهایی که به شما هایی در واقع یه مکان فیزیکی میدن یه میز میدن توی این اکس ها میدین اینا نمیناهاشه یه میز به شما میده در کنار شما چند ده میز دیگه وجود داره و اون ده میز دیگه ده ایده دیگه هست که ده ها ت به شما کمک میکنه که به تیم سازی انجام بدهید چون همهشون افرادی هستند که میخوان کار افرینی چون همهشون ادم هستند که میخوان بیان تو این بیزنس و در طول دربریارند سعی میکنند شما رو نگه کنند سعی میکنه شما اون کار نگه کنی و اون همون لیVEL ایدئا ولده اینجا انجام میشه. سیم گفتم نگفتم اینجا به سادگی چند ادم های اجرایی خودت رو دارید میدید ادم هایی که دوستان کار افرینی بکنن و درونی جایی که چخ اشون خیلی ارلی استدیج خیلی در لیول های ارگاندی یه شرکت هستی، شما سهامی نمی‌تونه بگیره، شما سرمایه‌گذاری هم نمی‌کنه چون هیچ والوییشنی وجود نداره. در, در از شما یه اجارهی حداقلی اولی می‌گیری برای اینکه بتونه در واقع کار شما رو را مندازه و جلو بده. اسلاید بعدی می‌ریم. کوگورت گسیسو در حالت کلی 4 تا کار شما خوبه توش انجام بده. اولیش همون داستان آیدیا که باها دوم مشینه که تیمتونو بسازید بلدش کردم مهمترینه سوم مشینه که یه ام دی پی بسازید ام یعنی یه محصول اولیه‌ای که بتونید در واقع ارائه بدید به بازار و چهارم مشینه که مارکت استادی انجام بدید بازارتونو بهتر بشه اسلاید بعدی می‌ره ببینید اینجا یه نمودار هست این نمودار بر حسب پولیه که توی اسارپ کار قراره که در واقع بیاد و خارج بشه و در واقع اون ریونی که داره تو مراحل مرحله اولش من به واسه یه زره دارم اینجا توی این اولش، شما می بینید که این داستان در واقع منفیه به خاطر اینکه که شما محصولی نداشتید، وارد بازار نکردید، خودتون رو پولی نتونستید، در بیارید منفیه، اینجا اونجا اینکه کوورکیست میتونه به شما کمک کنید، یه حد پولی میگیره شما رو میذاره کارتون رو انجام بدید، شما در واقع با حداقل اقل پول بیزنستون رو میبرید جلو اینجا جاییه که هر چقدر میتونید با پول در واقع خودتون بزنید، رکعتو کار خودتون. نه با چشمتون به دیگری باشه. اگه موبایل اضافه دارید بفروشید، اگه لپتاپتون رو میتونید بفروشید، بفروشید. اگه یه پدرمادر میتونه قرض بگیره، قرض بعد بگیرید تا بتونید کارتون رو بوجلو. ولی وقتی که بیزنسه شروع به رشد میکنه، توی لبلای اول اکسلراتوره، توی لبلای دوم وی اس ا که حالا هنوز میرسیم که چیه، این داستانه میره جلو تا به نهایت، اینکه یه شرکت خیلی بزرگ. اسلاید بعدی رو یه شرکت برای که بخواد بزرگ بشه، برای که بخواد توسعه بده خودشو توی هر لیولی که باشه نیاز به فاند رایزینگ می‌داره. اولش گفتم شما میای لپتاپتون رو می‌فروشی، بری فاند رایزینگ خودت داری پول می‌ذاری. توی لیبل‌های بعدی دیگران سرمایه‌گذار، این میان که شما پول می‌ذارن. در نتیجه شما یه فاند برای که بتونید یک کمپانی بزرگ داشته بشه، این کاریه که بدیه و بعد انجام می‌ده. اسلاید بعدی. میداره. برای اینکه شما بخواد فاند انجام بدید، که تو اون نمودارام گفتم از یه جایی به بعد که ما بهش میگیم الی استیج این مرحله الی استیجی که یه استارتاپ داره کار میکنه اینجا قرارو فاند رایز میکنه اینجا جاییه که میتونه بره میشه اکسلراتورا اکسلراتورا یه جاییه که ریسک اینو میپذیرن با اینکه شما خیلی چیز گنده ای نداری کمک کنن به شما برای اینکه بتونن سرمایه اولیه‌ی شما تامین کنن که شما بزرگش. می، میتونید یه زنگ بزنید تا برید میشه وی اس یا وی ونچر کپیتال یا سرمایه گذاران خطرپذیر ویسی ها فرض کنید که یه نهادیه که چندین تا اینستور میان توش پول میذارن و این پوله که جمع میشه یه پول بزرگتری میشه حالا ویسی مدیریت میکنه که روی چه پروژه هایی کجا ها باید در واقع سرمایه گذاری میکن. میتونید برید چه انجل اینور ها یعنی یه سرش سرمایهگذاره ای که خودشون مایلن به این بیزنس شما شاید شما اگر توی حوزه مالی این کار را انجام بدید یک آدم مثلا ن سرشنناسی باشه توی حوزه مالی که دوست باشه به شما این بست یا در حالت اخر میشه بیزنس کانییا شما اگه مثلا همون یه استارتاپ دارید که کوزه مالی میشه بریدش بانک بانک میتونن مشتری خوب باشن برای اینکه بتونن روی شما اینوست یا حالتش اینه که برید وام بگیرید که وام در واقع وامای خوبی دارین تو کشور وامای دانش بنیان میدن با تسهیلات خیلی خوبی و میشه از اونها استفاده کنید تا اینکه کار خودتون رو ببرین جلو حالا که داخل سیستم های کراف فاندینگ میگه که اوکی کس اگه نمیخواد برای من 100 میلیون تومن یک میلیارد برای من سرمایه‌گذاری کنه اوکی من اینو میام پخش تو همه مردم همه مردم بیان پروژه منو ببینن هر کسی که دوست داشت من 1000 تومان می‌ذارم شما 12 دستونه پول بیشتر دارید ممکنه 1 میلیون تومان بذارید یکی دیگه ممکنه خیلی بیشتر پول داشته باشه بیشتر بذاره تو این داستانه هر کسی که حالا میاد پول می‌ذاره یه پول جمع میشه حالا مدل داره وارد دیتیلزش نمیخوام بشن با شما ولی بازم دارید فاند ریز پول می‌گیرید برای اینکه اون کارتون انجام بدید اسلایل بلیو میبین توی اکسلریتور ها سرید توی ها که به شما داده میشه اینه که کمک بکنه به شما اینکه که نتورکی که لازم دارید و بسازید کمک دیگه اینه که شما رو وارد ایبنت هایی میکنه که ممکنه نیاز داشته باشید بهش کمک بعدی که ممکنه به شما بکنه اینه که شما نیازمند این باشید که درباقو فانج ریز کنید چه تو اون لبل، چه تو لبل بعدی، توی لبل اولش، خودش میاد سرمو میکنه و توی لبل بعدی افرادی رو میشناسه که بشتونه به شما جوین بده توی درباقو شما نیاز به آموزش های کسب و کاری دارید در مورد علم بیزینس کردن دارم با شما صحبت میکنم هر بیزینسی اون تیمی که گفتم باید حداقل دو الی سه بال داشته باشه. بال اولش ساید فنیه که اون آدما کار فنی بتونن انجام بدن. بال دومش دو کسی که بتونه مارکتینگ بکنه و بال سومش یکی از که بتونه کاری کار اجرایی باشه. کار اجرایی اونجا رو انجام بده. اینو کمک میکنم که شما که این آموزش حالم دیده باشید چون ممکنه یه چنین آدمی رو دور و دوربر خودتون که بخواید تیم‌گیری خودتون کنید مارکتینگ بلد نباشه. اسلاید بعدی میاد. یه دونه دیگه هم بداریم. تو ایران نسی شتاب وجود داره که خدا را شوی کم نیست ولی حالا بعد روی کیفیتش صحبت بکنی ولی که همه خدمات رو به شما میدن ولی یه بزرگ داره اون اونیدی که تو آی آیتی باشه ایداره شما این کانسپت اکسلراتور یک کانسپتیه که داره به شما کمک میکنه حالا این میتونه هر کسی دیگه ای، توی هر جای دیگه ای شاید نهادهای دولتی توی جایی که پول بیشتری شاید نیاز باشه اونا باید بیان وارد شن چون بخش خصوصی زورش به مثلا حوزه مکانیک نمی‌رسه. اگه بخواد یه موتوری طراحی بشه توی حوزه مکانیک خیلی پولش بیشتر از یه سایتی که بخواد ده اسلاید بعدی رو در مورد یک کانسپت میخوام با اتون صحبت کنم و این واقعا در حد یک کانسپته در مورد اینه که ما چیجوری باید تو بیزنس فکر کنیم همین نوشتن بیزنس پلان یا کسب و کار فقط برای اینه که شما بدونی که قرار تو اون بیزنس چی کار بکنیم یه ای تایتل داره آید و رو صحبت کردیم مارکت سایز به این مفهومه که اون مارکت که دارید وارد میشی چه از لحاظ ریالی یعنی فودی چه از لحاظ یوزری دارید با چند نفر یا چقدر میلیون تومن چند میلیارد تومن ته بازار شماه شما باید اینو بدونید این هر فکر کمک میکنه به شما که اون ایده هایی که ممکن بود خیلی زیاد داشته باشید. یه سریاشو بذارید کنار. چرا چون مارکت کوچیکی داره. میبینید نمیسازه. برای که من این همه بخوام تلاش کنم، برم همچنان برای این خود خب نمیخوام. یه ماتریس استابلیتی هست. خیلی از زمانش گذاشته. ولی چیزی که تو اون مهمه، اینه که شما بدونید چه عواملی در درون تیمتون مهمه که بهتون کمک میکنه. و چه عواملی از خارج، یعنی از محیط میتونه به شما کمک می میکنه یا از او تطید میکنه که در حال بیزنس شما تطوش آ قرار بید. اینا رو باید بدونید هم خودتون رو بشناسید هم نکیط بیرونیتون رو بشناسید. بعدیش اینه که شما باید در مورد روغاتتون دید داشته باشید دو غاتتون دارن چیکار میکن؟ روغبا دو نوع هم یکی اونایی که درقیقا دارن هم کار انجام میدن دومی اون کسی که میتونونه این کار انجام بدهید اگه ببین بیزنس شما بیزنس خوبی و شاید زوبش بیشتر باشه. شما باید بدونید چه جوری باید مارکتنگ کنید، بازاریابی کنید چیجوری باید اون آدم هایی که نیاز دارید رو پیدا کنید برای که بیان از سرویس شما یا اپلیکیشن شما یا هر چیزی من شاید یه زمانی پروژه راز باشه که میخوام اون دروابط اون قوم جامعه باید بشناسم بدایم که چیجوری باید به اینها وارد بشه بعدی در موقع جریان درامدیه این بکر کنیم چیجوری میخواد این جریان درآمدی برای ما دروابط به وجود بیاد چقدر؟ عدد تومنیش حالا چقدر باشه باید وقتا تو توی بحثای پرایسینگ میگنی که ما خیلی نالج عجیب قریبی نداریم باید تست کنیم بازار بعد یه دور تست بکنیم ببینیم که چه عددی مردم فیدبک میدن و دو تا موضوع آخره فایننشیا پلن و اکشن پلنه که فایننشیا پلن و اکشن پلن کمک میکنه به شما که بدونید به اولی درآمد. ازنه و سودتون قرار چجوری باشه؟ با چه رشدی قرار بشه کجا نیاز دارید دید پیدا میکنید نسبت دستات ویزینستون و عشا برنامه اجرایی همونی که بتونید بفهمید که چهیکارا بر انجامید ااسع بری می. ببینید این فرایینده که گفتم همه این جایی که گفتم بیسی اکسری پ Space ماکز رشد گم بود این کیریتون راست اینها همه قرار به شما کمک بکنه که کسب کارتون رو ببرید جده. اینا فقط یه کمک هم، میتونید ازشون استفاده کنید، میتونید نکنید صاحب این ایده خودتونید، صاحب ای کس خودتونید. کسی این کس کار خودتونید نه اینها هم صرف هم یه مشکل رو شناسایی کردن و برایش یه سلوشن دادن اینا هم دنبال این که در واقع به بیزنس شما کمک بکنن، ولی از اون من در خودشون هم داشته باشند. هر جوری جو جوز کو جوز کو ورینگ هست پس کورک اسپیس ولی میگیره در شومن یعنی جاها روی شما سرمایه‌گذاری مونه و سهام شرکتتون میگیره این که سهام شرکتتون چقدر باید بدید چند میلیون تومان چند درصد مهمه الان فکر نکنید که الان نیروی اس ای مثلا اهمیتی نداره ولی باید اونور فکر شده بشامل کنید ولی این چرخه ای چرخه و می چرخه و می چرخه تا اینکه شما پول می گیرید توصیه دید. پول دیدید قبول می گیرید توصیه می اسلاید بعدی الان دارید پیش پول اه پینج شما کم میشه. میری توی بورس، برای که از همه آدما بخوای پول بگیری. اونجا جای که دیگه پول تک تک اینوستاها به دردتون نمیکنه، میرید یه جایی که همه موضوع داشته باشن. اسلاید بعدی میذیم. حالا ببینیم که چجوری میتونیم یه سرمایه رو جذب کنیم. حالا این همه جا هست چه داستانی وجود داره. اسلاید بعدی. یه سری داستانا هست؟ که باعث تو رفتار شما یه اینبسور حس بکنه. اینجا نوشتم حالا دونه دونه در موردش صحبت کنیم. این دارم، حالا اگه امکانی باشه بعدا یه جایی می‌ذاریم که همه بتونن ببینن. ولی این چیزی که تو رفتار باید باشه نه توی دروغه مکتوب چیزی که به آدم طرف مقابل اینها رو باید طرف مقابل تو خوشش حس کنه که شما اینها رو دارید امانت داری، آدم با تجربه است، دانشش رو داری. همین اینو قوامش میکنه به اینکه اون خیانش راحت بشه که شما روی شما اینوست کنه، استفاده بعدی یه این چیزا ما رو کاووس بیاریم. احتمالا شما وقتی میخواد بوی اینو سر صحبت کنید دست خالی که نمیرید پیشش. باید یه پاورپوینتی داشته باشید، باید یه طرح مکتوبی داشته باشید. این اون چیزی ای که باید حتما توی بیزنس، در مورد توی اون ارائهتون بیاد. چیزهایی که باید بیاد اینها هست و چیزهای غیر از اونها بهتری که نباشه. به حاشیه نوبت بپازید چون این اینوست خاصش هستش که شخص. رویش خلا این داستانی که استارتاپ از این ایده به وجود می اومد و می رفت یه کمپانی بزرگ بشه، خب یه چیز بدیهی بود. هممون میتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی چرا توی آمریکا از هر 10 تا استارتاپ داره فیل میشه؟ توی آمریکا ها، توی سیلیکون ولی، توی جایی که همه آدمها دارن تلاش می‌کنن که بیزنس های گونده در و چرا این فیل میشه؟ اینم روش کار کردن، اسلاید بعدی بعدی به این 5 تا رسیدن بیویس شرکت شرکت‌ها تو معرزی کردن اومدن دیدن ایده در تیم بیزنس مدل فاندینگ و تایمینگ مهمه تو اینکه شما بتونید بیزنستون رو موفق کنید اگه اینا بار نکنید واقعه به شدن 200 شرکت تو آمریکا تو سیلیکون ولی شده درش شما باید به اینا از روز اول دقت کنید واسه هر کدوم از اینا چه برنامه‌ریزی استراتیژی می‌ذارید از بین همینا اینا مهم‌ترین پارامتر بوده که شناسایی شده شما باید بدونید که چه زمانی با چه مقصودی وارد بازار دارید میشید. آیا واقعا مارکت رو میخواد، نمیخواد؟ چه زمانی رو دارید صرف میکنید که به این برسید، چیکار باید انجام بدید؟ تمام این موضوعا میشه تایمینگ، روی تایمینگتون فکر کنید. و موضوعی که وجود داره اینه که الان توی دنیا، تا این بزرگترین در موقع نکته‌ای که وجود داره تو फेल شدن استارتاپ‌ها، تو ایران که صد اهمیت داره. اساتید بعدی میزنید؟ الان تو ایران ما در واقع فرصت خیلی زیادی داریم این فرصتایی که داریم به تवाय تعامل حساییه به تवाय باز شدن ارتباطی که میتونید با کمپانی بزرگ داشته باشیم به تवाय اینه که ما شاید خیلی کارها رو بتونیم بکنیم قبل از سال پیش اکسلراتور نداشتیم پلان داریم و هزاران چیز دیگه که میتونه به شما هم کمک بکنه این فرصت ها رو از دست ندیم تک تکمون اگر دیر بریم ایشون فکر کنیم از این فرصت استفاده کنیم و شروع کنیم استادتون علی می‌دونید پس میشه شروع کنیم هر کدوم از ما اگه یه ایده ای داریم از تمام این داستان ها و هزاران چیز دیگه که توی اینترنت هست، توی جاهای مختلف اصلا کمک نمی تونه شما اس... کمک بگیریم من اینکه کارمون رو شروع کنیم و نهایتاً استوری بعدی امیدوارم که همه شما ایده هاتون بتونه به کس بزرگی تبدیل بشه، بتونه کمپانی بزرگ بشه و اون موقع که میتونم بگم این برنامه اون صحبت من و شاید صحبت های دیگه که جاهای دیگه داره میشه که یه جای خوبی رسیده و ماها خیالمون راحت میشه که اگه یه ذرم پر حرفتی کردیم که بکنم خیلی باشه اینها چیزی نبودی که زمان شما رو طلب بکنه خوش خواهی میکنم تول کشید خوش خواهی دوقت اینه که اصلاعیده یه ذرش فارسی بود یه ذرش انگریسی خیلی معادلهای فارسی خوبی ما باید این داستانا نداریم ملچکل از شما امیدانم روز خوبی باشید